قبل از هر چیز هر سخن، خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاس خوزداریم و تشکر میکنیم. به خاطر همه توفیقات و هرزشمندش، به خاطر همه نعمتهای خوب و مفیدش، اگر ما بنده خدا هستیم تشکر حق خداست اگر ادعای بندگی خدا را داریم باید سپاس خدا رو شناس نعمت های خدا باشه حق باید ادا کرد اولین کسی که باید ازش تشکر بشه الله هست به خاطر همه نعمت های خوبش همه نعمت های خداوند خوب هست همه نعمت های خداوند مفید هست خاصیت هر نعمت مفید بودن هست هر چیزی که خداوند برای ما و شما تجلیز نموده حلال معرفی کرده اجازه استفاده از اون داده اجازه داده که در زندگیمون به کار بگیری اون نعمت هست چون اگر نعمت نبود، اجازه استفاده از اون را خداوند صادر نمی کرده. نعمت هست که مفید هست روح افزاست سلامت آفرین هست سعادت آفرین هست توانمندی ایجاد میکنه این مسئله مسئله مسلمی هست تا چیزی مفید نباشد خداوند اجازه استفاده از اون نمیده چه مادی چه معنوی نعمت‌های خداوند سه قسمت هستند چون ابعاد انسانی سه قسمت هست فکر و جان و جسم همه نعمت های خداوند این سه قسمت و سه بود انسانی را توانمند می کنند هر نعمتی در زمینه خاص و این سه انسانی که با نعمت های خداوند توانمند می شوند سبب توانمندی انسان می شوند. در هیچ نعمتی مشکل منظور نشده در هیچ نعمتی از های حلال خداوند زرر منظور نشده در هیچ نعمتی از نعمتهای خداوند بی‌حرمتی، بیاعتباری، بی اعتباری، بی زلت، خاری، منظور نشده؟ یک سوال مطرح است. اگر همه نعمتهای مادی و معنوی خاصیت مفید بودن دارد چرا این همه مسلمان بدبخت است. روز به روز بی آبرو می شود، بی اعتبار می شود، زلیل می شود، خار می شود، بی حرمت می شود. بر می گردیم به همون. مطلب اولی آغاز سخن، شکر، شکر، توان تزریق شده نعمت منتقل میکنه از نعمت به انسان و بعد به جامعه‌ای که اون انسان در اون زندگی میکنه. استندری کاری دست ما میده و به عنوان یک خاطره در کتاب ها می نویستن که خطیب از روی منبر افتاد شنیدید که خطیب از روی منبر بیفته در اصناد خود به تو کتاب ها این پاشکسته زیر پا مون بذاشتن می <تصفح> می دونم منظورشون چیه <تصفح> اونم تو عصری که بالاخره دیگه ابزار ارتباط جمعی و الاخره دید. خیلی شکر خدا کمک من بکنگی <تصفيق> پس شکر انتقال دادن توانی که خداوند در نعمت قرار داده به خود شخص و بعد جامعه رو توانمن کردن این یعنی شد خداوند در هر حلالی توان گذاشته اگر نعمت برای ما و شماست توان هر نعمت دوباره برای من و شماست مشکل در نعمت نیست چرا ما با وجود این همه نعمت ها توانمند نمی‌شویم نحوی نحوی تعامل ما با نعمت و برخورد ما با نعمت غیر صحیح است درست نیست یک جای خلل هست حتی اگر شکرام میکنیم احتمال داره که شکرمون ناقص باشه برخورد صحیح با نعمتهای خدا یعنی شکر هرچی شکر کاملتر باشه انسان کاملتر و توانمنتر میشه چون نعمت آمده که خلق خدا رو توانمند بکنه منظور خدا از تجویز نعمتهای مفید توانمندیه در از آدمی به جایی که به جز خدا نبیند انسانهای بزرگی شکر کامل نعمت ها رو به نعمت تزریق کردن از نعمت توان برداشت کردند و زمین و زمان رو به کام خودشون وارد کردن بر اقیانوس ها مسلط شدن بر زمین مسلط شدند. بر همه موجوداتی که در پیرامونشون بود مسلط شدن هیچ چیزی در مقابلشون نتونست علم بشه این شکر که از نعمت برکت و توان تولید می کند. ما به فکر جذب نعمتهای زیاد برای خودمون هستیم مادی و معنیش ولی جذب نعمتهای متنوع و بیشمار منهای شکر یعنی بدبختی نابودی فلاکت بی اعتباری بی آبرویی خاتمه به خیل نشدن. کامل ترین شکر ندونه چیه نعمت را در جهت اهداف خدا از خلقت نعمت به کار گرفتن این کامل ترین شکره خیلی ممنون متشکر دست در نکنه این شکر نیست. این عدبه. گرچه عدبم یک نوع شکره. ولی نعمت را در جهت اهداف خدا خالق از خلق اون نعمت به کار گرفتن این کاملترین شکره. تو نعمتهای خدا چه مادی چه معنوی هدف خلقتش پیدا بکن کاربریش پیدا بکن توانمند میشی نعمت با برکت میشه هرچی برکت بهش تزریق کرده خدا و توان تولید میشه و در اختیار تو قرار میگیره و دنیا و زمین و زمان رو به کام خودت ببر. چرا از شکر خافلیم؟ تشکر طلاب سال سوم متوسطه از الله چیه؟ بعضی ما که فکر میکنیم در مقابل یک نعمت میشنویم از پدر و مادرمون میگن صد هزار بار شکر اینم یه نمونه شکره صد هزار بار شکر شکری که سبب توانمندی میشه شکر عملی است شکر شکرتم لعزیدن نکم شکر قولی نیست گرچه اونم لازمه ولی شکر عملی است مثل الذین ینفقون امرالهم فی سبیل الله که مثل انفاق یک نوع شکر نعمت مال هست. اگه میخوای به مالت احترام بگذارید انفاقش کن. این تشکر مالته. احترام به مال و تشکر از الله به خاطر مال انفاق مال در راه درست. اگه میخوای احترام به چشمت بذارید مطالعه مفید داشته باش اگر میخوای احترام به دلت بذارید قصد خیر کنید. اگر میخوای احترام به فکرت بگذارید تصور مثبت داشته باش اندیشی مثبت تفکر مثبت، اگر میخوای احترام به پاد قائل بشید و ازش تشکر بکنید ازش خواهش بکن که تو رو به جای خوب ببره برای حمل بکنه. نه همش احترام گذاشتن به چشم گوش مال، دوست، رفیق، استاد، خالگرد، ماشین، ضبط میکروفون، کامل ترین شکر شیخ اشاره فرمودن صالح و مصلح میدونی شکر صالح بودن چیه؟ مصلح بودنه چیز دیگه نیست توی که سوم متوسط خوندی صالح شدی شکر این سالح شدنت مصلح شدنته دیگران تلاش کردن که تو سالح بشی حالا شدی تشکر تو چیه این که تو تعهد بدی که مصلح بشی در جامعه تو زحمات دیگرانو شکر سالح شدن مصلح شدنت وگر نسی صلاحت از دست میره هر کسی این خودش تنها صالحه تو فکر خودشه آخرم بد میشه اگر به فکر صلاح جامعه نباشه میخواید تعریفتون بکنم خوشتون میاد تعریفتون بکنم بدون هندو نرده میدونه تعریف آدم چی کسی میکنه عمل کرده انسان نیانس نیست کسی تعریف بکنه. کنه بعضی موقع تعریف های زیادی القاب زیادی آدم رو قلدر میکنه مزرد می خود خودقاه میکنه عملکرد انسان انسان رو مزهر میکنه عملکرداتون چیه؟ عملکرد انسان خود به خود تعریف انسان میکنه نیازی نیست تعریف آقای زیایی بکنیم خدا رحمتش بکنیم این همه شاگرد و طلبه و انسان‌های خوب تعریفشن. اگه طوری وانمود کردید که مردم تعریف بکنن یا وادار کردید که تعریفت بکنن عمل چیز دیگه هست یا اوم یک و انساق و یا دهاب نعیل یوم 12 سرائر روزی که اسرار بر ملا می شود انتظار نداشته باشی کسی ازتون تعریف بکنه این یک نقصه اگر تعریفم کردن مشغول به استغفار باش. چون تعریف و القاب هرچی بالاتر میره تو ضعیفتر میشی به خطر نزدیک‌تر میشی وقتی که تعریف میکنن مشغول استقبار باش و رفعن آلتا ذکرک میدونه چی چیزی نام انسانو بلند میکنه نام نیکو از عمل نیکوست از مقافات عمل غافل مشروع گندم از گندوم به رویت جوز جو طلاب سال و متوسطه که این مرحله رو تمام کردن نه اینکه علم رو تمام کردن نه اینکه فارغ فارغا تحصیل شدن سه تا تشکر باید بکنن اولیش از اللهه همون تشکری که گفتم ها. تشکر دوم از خیرین باید بکنن طلاب مدرسه امام شافعی سال سلوه متوسطه چطوری میخوان از خیرینی که این مکان پاک برای رشد فکریشان رشد روانی و روحیشان رشت اخلاقیشون موقعیت اجتماعیشون وقتی عالم بشه موقعیت اجتماعی پیدا می کنه در آینده برای سعادتشون برای آخرتشون برای ایمانشون برای پقواشون برای حفظ آبروشون اگه اینجا نبودی یه مطال بودی خوب بود؟ جا معتاد تو اوزان هست شاید از کنار مدرسه رد بشن شما طلاب عزیزی که 5 سال تو این فضایی که خیرین ارز این افتخار و این توفیق از خدا پیدا کردن از جانب الله که این مدرسه مبارک رو بنا بکنن و حزینه پرداخت بکنن و امکاناتی فراهم بکنن که این مدرسه پایدار بماند. الان شما یک مرحل از مراحل علمی رو پشت سرگذاشتی 5 سال چه حرفی دارید به این خیلی بزرگوار بار بزنید؟ چطوری میخواد از اون تشکر بکنیم؟ برادر خیر عوض از شما تشکر میکنیم که این محل، این مدرسه، این امکانات این فرصت برای عالم شدن ما متقی شدن ما، خوب شدن ما فراهم کردیم به نظر شما این تشکر از اهل عوض از خیرین عوض و مردم عوض تشکر نیست اگر به همین بسنده بکنید بعد برید اونجا دنبال کار و زندگی و همه چی رو رها بکنید من به بچه های عزیزم هم گفتم تو جلسه خصوصی که اون لقمه هایی که اینجا خوردید زکون میشه از بایی مال المال سر شما نیست کسی قبول ما شده منت بگذاره او به خاطر نجات خودش از آتش جهنم مالشو داره هدفدار میکنه و به خیر وارد میکنه ولی دو مرحله مد... مقدمات و متوسطه بخنید حدقل 5نج میلیون تومان هزینه برای یک نفر شده. چطوری میخواد از خیری که تو این 5 سال پنج میلیون من برای هر نفر شما هزینه کرده تشکر بکنید. تنها راه تشکر از این خیر این که یک مصلح اجتماعی بشید یک دعوتگر بشید یک مربی که دارای نفوذ معنوی در جامعه هست باشید نسل آینده رو تربیت بکنید اونی که اینجا هزینه کرده خیر اینی که مربی تربیت بشه با مالش و جامعه انسانی و اسلامی رو تربیت بکنه. اگر در غیر این صورت تو باشی که از این امکانات خیلیهی استفاده کردید تو تشکر نکردید از خیر تو خیر رو ناراضی کردید دلخور کردید تو دهنی بهش زدید شاید هم راه خیر رو مسدود بکنید تو دیگه وقتی خیر دید که طلاب میخورن و میخوابن و این همه هزینه میشه برای شن. بعد میرن بیرون آتل و آتل میگردن از خیر کردن هم مسترف میشن چه بسا تش... عدم تشکر واقعی شما از خیر سبب بشه که خیر منحرف بشه خیرم محیوس میشه ولی اگر همه شما زیائی شدید خیرین ما چند برابر میشن کسانی که خیرم نبودن میان خیر میشن بیگن فلانی خرج مدرسه دینی امام شافعی رو داد حزینه مالی کرد مدرسه درست کرد. امکانات مادی مدرسه رو فراهم کرد. از هر تومنش، هر ریالش، یک زیادی درست شد. ما هم بریم همین کار بکنیم. اگر از این همه پول خیل تا سوسول درست بشه, بی تقوی درست بشه, بی تعهد درست بشه, بی مسئولیت درست بشه, بی مندوار درست بشه, بناب خدا. ولی قطعا این طور نخواهد شد مگر کسی که دیگه نظر خدا ازش برگشته باشه اگر نظر خدا ازت بر بگرده تو دانشگاه مدینه هم بخونید من نمیخوام مثال بزنم چون من میترسم یه درسی مادر بزرگم به من داد و مادرم, مادرم. خدا رحمتشون بکنه مردگان ما و شما همه من تنها پسر خانواده بودم شب که میشد دیگه مادر بزرگم بود و مادرم و کچکتر از هم بودم همه دیگه رفته بودن خانوی خودشان قبل از اینکه مدینه برم رو که خوابوش میکردیم تو اتاق من وسط مادر بزرگم و مادرم میخوابیدن وقتی رفیق میگذاشتن میگفتن خدایا نظر تو برنگردد من نمیفهمیدم بچه بودم چیه خدایا نظر تو برنگردد کار هر میشون بود مادر روزی شما و مادرای شما و پدرای شما همین رو میگن بعد که رفتم مدینه توفیقی حاصل شد درس خوندید الان فهمیدم که نظرتو برنگرده دیلی چیه خیلی عالم شدن نظر خدا از برگشت خیلی ها تاجر و توانمند شدن نظر خدا از برگشت ما فکر بیکنیم نظر خدا از فقیر و جاهل برگشته کسانی هستن که مکتب نرفتن شب که میشه قرآن بلد نیست روخانه قرآن بلد نیست حروف نمیشناسه شبه یک جز قرآن ورد میزنه دست رو خط قرآن میکشه نگاه میکنه عشقش جاری میشه میخوامه وقتی میمیره شهاده به با وزو میمیره رو به قبله شهاده به زبانش میان اما خیلی ها عالم شدن، مدینه رفتن، دانشگاه اسلامی رفتن، موقعیت پیدا کردن، بد زلیل شدن، بد مذار خود ازشون برگشت، بعد با پست و مقام خودشونو فروختن، بد دوچاره وسواست شدن، بعد لحظش پیدا کردن، یه دستگیری داشته باشید، خدای نظر تو برمگردد، اگر بر من از روی سندلی منظور منظورم این سندلی نیستا آدم از روی سندلی بیفته پاشوردش سندلی دوباره میتونه سندلی مؤمنین تو دلهای مؤمنینه محبت مومنین تو دل علماست و محبت علمای واقعی تو دل مهمن و مومنینه و صحابه به نمایش گذاشتن محبت را صفا و سمیمیت را دوستی را اخوند را برادری را شما طلاب عزیزی که پنج سال اینجا بودید با توفیق خدا اینجا بودید این توفیق رو چطوری میخوایی تشکر بکنید. از خیرین و اهل عوض که پنج سال شما رو تو خودشون جا دادن و شما رو مایه برکت عوض میدونستن بابر رو ما یک محاسبهی کردیم با شیخ که الان تو شهر عوض نزدیک پونست تا طلب وجود داره اونی که حفظ قرآن میخونه اونی که تو مدارس هستند تو مدرسه احمدی هستند تو شعبهی حفظ تو مدرسه دینی خوهر هست. محاسبه کردیم پونست نفر چقدر خیلین شما برکت دارن که این مدارس و این زمین رو فراهم کردن که پنسد انسان با تقوا بیاد تو شهرشون و هزینه های سنگین پرداخت بکنن که شهرشون سرپاوی نیسته به زباد مره قابل تقدیره شما چطوری میخواید اشت برگو کنید؟ تشکر انسان صالح مصلح شدنش هست اگر میخوای از صالح و صالح شدن تشکر بکنید باید مصلح میشید اگه نشدید تشکر زوانی فیدی نداره این دوتا تشکر تشکر از الله تشکر از خیرین و اهل قبلش قبلشم اشاره کردم که خیرین و اهل عوضم باید از الله تشکر بکنند که توفیقشون داد زمینی پنسد عالم و دائی و مربی و دعوتگر و مصلح انسانی و اجتماعی رو در شهرشون فراهم بکنه خیلی توفیق میخواد. اونها هم سر به سجده میفتند که خداوند مالشون را قبول کرد. وگرنه یک مثال بزنم از قومیشان خودم پسرعموم میگفت که با جماعت تبلیغ رفتیم پاکستان بعد هی از بومبایی رفتیم تایلند برنامه بود بانکوک تو شمال بانکوک مسلمان‌ها هستن جنوب بانکوک هم جنوب تایلندم هم جزور فتانی هست که اونجا ما سرمون میشینم. دیگه رفتیم اونجا یک مدت که هم موندیم یه چیز عجیبی دیدیم تو بانکوک نماز صبح یه نفر پیش نماز نماز زور یه نفر پیش نماز نماز عصر یه نفر نماز مغرب یه نفر نماز عشا یه نفر تو بانکوک یوسف خانم مسئول مرکز اینجا بود آج یوسف خان سوال کردید امام ندارید اینجا گفتید این همه امامن دیگه صوت خوش قرائت خود تو بانکوک اگه بگیم تو مدینه خود چیزی ولی تو بانکوک این قدر مهمان نواز بودن کریم بودن میگه که وقت من تمام شد بازگشت من تو ما تو هواپیما یک کارتی به ما دادن که پر بکنیم وقتی وارد کشور دیگی میشی و وارد کشور خودمون یا دوبهی میشی یا به انگلیسی بود ما نمیفهمیدیم دیدیم که دو نفر پشت سرمون صحبت محلی این منطقه میکنن زبان محلی خیلی خوشحال شدیم پشت سرمون نگاه کردیم چه خبره ببخشید شما ایرانی هستید بله دیدیم لحظه شان دیگه به این منطقه میخونه و از خودمونو خیلی خوشحال شدیم. ببخشی میتونید این کارتفورمار رو پر بکنید به زبان انگلیسی بله بله با میگه فرم دادیم که پر بکنم گفتیم ما یه سآله هم پس شما از کجا بگید میگه, میگه یکیشون شما ما از بهشت میبین بهشت گفت بله خب تو بهشت چه کار کردیم گفت ما دویس درهم همراه بود ده روز موندیم پولمون تمام شد حالا میخواییم برگردیم اگه بیشترم را بود بیشتر میموندیم توی این بهشت. واقعا اینجا بهشته. بعد میگه گفتم خیلی من نمیشه همین کارت منو بدید من به همین مهمان داره او خیلی میخوام بده نه برای طور میکنم خیلی منون شما دیگه سن از بهش داره میگم خیلی نه عوض و بس سر به سجده بیفتن که خدا مالشون رو قبول کرده که 500 ست تا عالم در شهرشون تربیت بشه در یک مقبع و خدا توفیقشون بده که دانشکده شریعت ما در شهر الهز باشه و این دانشکده جدیدی که دوباره زمین دادن و در درست میشه اونا هم باید از خدا شاکر باشن طلاب عزیز تشکر سوم باید از کی بکنید سه تا تشکر گفتم باید بکنید یکی از الله یکی از خیرین و اهل عوض سه از کی از کی از کی از با همهاتون از گسانی که از پول راکت تو گاه صندوق خیر در آورد از یک تومن یک آلم درست کردن از پول از امکانات از خشت و گلی که اینجا هست اینا که همش بیروهه خیرین باید بدونن که علماء چه نقشی در تحول پولشون داشتن به انسانهای روحدار زنده صالح و مسلح و نقش آفرین در جامعه خیلی این دوتا تشکر باید بکنن یکی از خدا یکی از علماء که پذیرفتن پولشون را هدفدار بکنن پولشون را مهر قبول بزنن پولشون را از فیلتر بگذرونن پولشان را تاهر بکنن خوب بکنن با ورکت تقدیم خدا بکنن این پول آغاست اینجا هزینه کرده میگن که آقای آجی معباسی عباسی ترمایی داره یک مدرسه علوم دینی اهل سنت در منطقه کرده بود در به در دنبال کسی بیگشت که پولش رو تبدیر به مدرس این دیوی بکنه و عالم و معلم و مصلح بکنه و دعوتگر اخیران بهش گفتن یک نفر هست به اسم شیخ محمد زیایی فارغ و تحصیل مدینه است اگه میتونه با این تماس بگیری این میتونه بلکاری بکنه 25 و سال هزینه میداد بدون که شیخ رو ببینه تلفونی با شخص صحبت میکنه جناب شخص شما هستید آدرس شما به من دادن من پول دستم باک کرده مانده شما میتونید پول منو تبدیل به عالم بکنید از این پول عالم درست بکنید معلم درست بکنید مربی درست بکنید مصلح درست بکنید دعوتگر درست بکنید حافظ قرآن درست بکنید طهوال درست بکنید اخلاق درست بکنید از من سعادت برای بشریت بیافرینید شیر گفت بله. مال از تو علم و خدمت و جهد و جهاد از من و توفیق از الله خدا همگواه میگیرم آقای عباسی گفت تا ده سال جناب شیخ من روی زمین باشم زیر زمین باشم تأهد میدم که این طول تذریف میشه گفت منم تا ده سال تعهد میدم که پول تو رو به کار میگیرم ده سال که تمام شد زنگ زد بعد از این که شاگرده سی نفر بودن چه نفر بودن او که مثلا فجار رو پر رسیدن زنگ زد آجی ابراهیم تعهد من نسبت به تو تمام شده ده سال بود مدرسه دیگه از این مال تو نیست حالا چیه دیدی؟ عالم میدین می چه کار بکنه خب عالم موفق توفق خدا اونایی که نفوذ معنوی دارن نه اینا های که کلمات خوش دارن میگن ما تو تقسیم بنده همون چهار تا گروه داریم طالب عالم معلم مربی طالب عالم معلم مربی نه هر معلم مربی است نه هر کسی که کلمات خوش که بی روحی که نفوذ معنوی نداره و گذار نیست طرف مقابل منفعلی می کنه اون مربی است شاید معلم باشه که معلوماتو انتقال بده پیانبر مربی بود صلی الله علیه وسلم چی رو درست کرد؟ چی رو تربیت کرد؟ یه معلم نبود تنها پس مربی بودن یه درجه بالاتره هر مربی معلم هست ولی هر مربی مربی نمیتونه باشه داره میبینی دیگه. وقتی ده سال گذشتی عباسی وقتی شیخ بهش گفته اهد من تمام شده زانو زن گفت شیخ حالا که مدرسه هم به صد و پنجه ها نفر نیست خود تو خودت گفتی من ده سال ده سال تمام شده حالا که از این مدرسه چه شخصیت های شده دوباره قرارداد بستن فکر میتونم شیخ هم ندید درسته؟ آخرم ندیدن هم دیگر را تلفونی با هم صحبت می و تو واشنگتن بودن تو مسجد خودش اونجا که خبر شهادت شیخ بشت رسید همونجا به امام مسجدست میگی تو واشنگتن که نماز باید بخونید تا چند سال پیش تابستان آمد دیران سری به طلابش بزنه آمد جنا علمای منطقه رفتن خدمتش که تشکر ازش بکنن یک نقطی تو جلسه خیلی نقطه گیرایی بود و اون دورندشی این شخصیت میرسند که چقدر این متعصر شده به این حرکت و سرمایه‌گذاری سرمایه تو این کار جناب شیخم تشریف داشتن علما های بزرگمونم بودن تو جمع یک دفعه آجی صدای پسرش زد گفت بابا بیا اینجا گفت اینا رو میبینید بله این گفت اینها دمای بزرگ خودمون هستند. من کلماتش رو با کلمات خودم دارم میگم. اینا رو ببینید، اینا کسانی هستند که به بابای تو خدمت کرده. سوداوری را به پول بابای تو و عمرش و زندگیش و خانوادش وارد کردن به پسرش میگفتا به پسر کوچکترش آورد تو جلسه فیلم می گرفت گفت بابا متوقف اینا را معرفی بکنم بعد رو کرد به گفت شیخ فلان شیخ فلان شیخ فلان تک تک از برد این پسرم میگینید بعد از من به این مراجعه بکنید بعد از من به این مراجعه بکنید به این پسرم برای تداغم کار این خسوط انبیاست. هست بچه هاشون رو جمعی کردن میگفتن ما تعبودونم من بعدی هر باید زمانت بیگیره خبل از رفتن هر پدر مؤمن این کار میکنه ما تعبودونم این بعدی بعد از مردن من شما چه کار میکنید فرزندان, فرزندان میگفتن کالو نعبدو که و اله عبایکه جناب شیخ زیایی جناب شیخ انساری جناب شیخ محمدی جناب شیخ امیری جناب شیخ فلان بعد از من به این پسرم مراجعه بکنید تشکر از علما از سادیدتون ان یادم نمیره با پدرم اینطوری بود زمانی قبل از انقلاب تو رادیو استان صحبت میکرد رب ساعت مادرم رو جانماز گوش میداد گفتم مادر این کیه؟ گفت این شخصی هایی از رو جانماز بلن نمیشد یه راڈیو قدیمی داشت رب ساعت شخص صحبت میکرد بعد یکی دیگه بود از علمای پشیعو بود اونم گوش میداد میگفتم این کیه؟ گفت شیخ راشده ولی که سه نزومی دونن شیخ راشد شد فرقای خوب میزنه دوستی پدر و خانواده با اون شخصیت برایم به ما بسید. شیخی بود تو دانشگره شریعت مدیره مرد مصری بود من اسمش خاطرم نیست استاد نه بود قد بلند بود روی داشت سوال کرد از طلاب و یکی که جواب نداد گفت قم یبلی. ام یابنی ولای شو فرزندم بسیاه آفریقایی میگفت ای جلیابنی جواب بده پسرم بعد دو استاد ما احترال جواب جواب حاضر ندارم ذهنم نیست تو نکرد هر خوش نکرد گفت مرد شروع دیگه تو ببرم بزنه جواب آماده نکردی من نگاش میکردم همطور طور استاده بود دیدم که دستهاش میلزی کم کم اگر, اگر رفت خودش رو خودشو به سندلی رسند و نشست چند دقیق دور ماهات شد دیدم که یک دو قدره از این چشمی سرازیر شد همه ی تأثیرات تو صحبت نیست همه ی تربیتها تو صحبت نیست فرزندم و طوری به جوش آمد که جواب آماده نکرده میدونه آینده چی میشه اگر طلاب جواب آماده نداشته باشن؟ آینده مرتبط به تلاش طلابه آینده یه جامعه این همه راه آمده که بگی بلد نیستم جواب نمیدونم این قطرات تأثیر گذاره شما طلاب عزیز چطوری میخواید از اساتیدتون که خودتون بهتر میدین در چه موقعیتی پذیرفتم که و در چه زمانی کسانی که با شیخ رحمت الله علیه تو مدرسه بندر کار کردن شاید از ماه ده با من شروع کردن ها پردونست ماها ده تومان تومن پنج تومن مسود میگه ماها پنج تومن ماه تا رسیدم به ده هزار تومن تا الان دیگه نهای دیستت پا 120 و بیشتر نمیگیرن که الانشم نمیگیرن یه روز شیخ بزرگی مونم آمده بود مدرسه بندر مدرسین رو جمع کرد گفت یه سآل. اگر مدرسه بگی دیگه الان برای مدرسین حقوق نمیدیم چند نفرتون میمونید حقوق نداریم بیدیم. چند نفرتون میمونید سنگر خالی نمی سوال دیگه سآل حساسیه محق میزنه یک ای کسانی که کار میکنن به خاطر حقوقشه زمانی رفته بودن انسان وقتی به خاطر خدا و جامعه کار میکنه کل توانایی جامعه مال خودشه پیامبر میفرمایند فرماین روابط اجتماعی توسعه اقتصادی به همراه داره کسی که دوست داره عمرش طولانی بشه و روزیش زیاد بشه سله رحم بکنه و این ما درس سله رحم رو دارن می دهن همه هم می‌ذنی تشکر یک طلبه و شاگرد از معلم و مربیش چیه؟ اینکه اولا خودش یک مربی و یک معلم بشه. وگرنه ارزانه نمی‌کنه استادش رو. بلکه مربی و معلمی موفق‌تر از استادش بشه. اون ارزشش میکنه معلم خالص اون ارزش میکنه علما میگن اگر عالمی و دعوتگری و داعی به مردم تلاش بکنه تو دلش این باشه که من تلاش میکنم که مردم خوب بشن مثل من بشن میگن این از دو حالت خارج نیست دو تا صفت بد داره حد اقل هم بخیل و هم حسوده خیلی عجیبه میگه تلاش میکنه که مردم خوب بشن ولی تو دلش مثل خودم بشن نگه این هم حسوده هم بخیبه اگه حسود نبود بخیر نبود میگفت من تلاش میکنم که شاگردام چیزی که خودم بهش نرسیدم اونها بهش دسترسی پیدا بکنن و از من موافقتر بشن و از من پیشی بگیرن و امکانات روز مسخر میکنم براشون من خیلی برام جالب بود جناب شکل یعنی فردم در معرفی کرد اسمش از تاتر هم ایشون معلم زبان بچه هستن تو معلوز نیدینیم آقای بیزایی خدا حضرت بکنه. چقدر جالبه چه از شدیدنی این کلام و این معرفی اگر یه رابراتور زبان تو اینجا داشته باشید تو این... میدین آفاق دعوتتون وسیع میشه الان شما یک زبان بلدید زبانتون به اندازه اطلاعتون از اون زبان درازه اگه دو تا شود دیگه سه تا زبان باشید سه تا زبانتون دراست در میشه ابزار دروند یک مرکز کامپیوتر وارد تو مدارس باشه طور زبان باید باشه دعوت جهانیه فکر جهانیه ال جهانیه خودمونو تو مدرسه دینی محاصره نکنیم، محدود نکنیم. علمای شما و اساتید شما که جانشون گذاشتن این ماشین رو تا چند مدت پیش اینجا بود درسته؟ با ماشین دور کردن که خاطره دور نمیشه که. با وجود ماشین هم خاطره ما زیاد نمیشه. همه چیشونو گذاشتن از سما انتظار دارن که و کمتر از یک معلم و یک مربی راضی نمیشن این تشکر واقعی است برادر عزیزمون که در ابتدای جلسه قرآن تلاوت کردن یا صحبت میکردن اینا. سوره ازاجا هم بهش اشاره کردن درسته تلاوت کردن من اونجا نشسته بودم خیلی جالب بود گفت ازاجا نصر الله شکر خدا بکن هنگامی که پیروزی و نصر خدا حاصل میشه نصر خدا کی میاد هنگامی که نصر خدا آمد نصرت خدا آمد یک سوال اینجا مطرحه در ذهن من مطرح شد وقتی تلاوت کرد کی این نصرت خدا میاد و حاصل میشه زمانی که ما مسئولیت پذیر باشیم همه ما احساس مسئولیت بکنیم بی تفاوت نباشید از خیر از شورا از بزرگ از شاگرد از مادر از پدر از طلبه از استاد از آشپز آشپز آشپز عزیز مدرسه وقتی که غذا میپزی بسم الله میکنید وضو میگیرید برای علما دارید درس می میخوام مربی بشن با وضو آشپزی میکنید همینطور یه چیزی پوشید این دو یالله. ماهی که بسملار الله میخواد. همین اینجا نه چند ماد پیش تو ب در فکر میکنم اعلام شد که آشپز مدرسه حافظ دیگه درسته یه آشپز داشتن حافظ کل قرآن اداجا الله زمانی که احساس مسئولیت بشه بعد دوباره عزیزمون آقای کی بود مطلوبی نه کی مطلوب آقای مطلوب سوری انشراح خوندن در فرهنگ اسلامی ما اینه از آسایش آسایش تولید نمیشه این جمله رو بگیرید و ملاق قرار بدید از آسایش آسایش تولید نمیشه از آسایش شکست نابودی تولید میشه ادا عرد نا انو لکه قریتن امر نا ها درسته؟ به طاعت تا فسخون وقتی پروری آسایش آمد تو زندگی اینو بدونید که دیگه به کامت نمیره مساید فرهنگ قرآن چیه؟ نگه این نمع الاسر یسرا نگفته این نمع الیسر یسرا از یسر یسر تولید نمیشه از آسایش آسایش تولید نمیشه از سختی در راه خدا و در راه اهداف و آرمانهای بزرگ آسایش تو میشه طلاب عزیز بودتون آدت بدید این را برمان یک اعتقاد و باور قبول بکنید تا در آینده زندگیتون در مسائل دعوت ظریف و نازک نواشید هی شکایت بکنید هی گله بکنید هی فریاد بکشید انسان‌های گله می‌کنند شکایت می‌کنند شکل می‌کنند که ضعیف و نفس هستند و انسان‌های ضعیف و نفس به درد دعوت نمی‌خوره حسابتون رو یک سره بکونید در این امشب اگر می‌خوید پا بذارید تو مرحله عالی عايزينون مطالب خوبی ارائه کردن خیلی خوب به هم رفت دادن ما یک انقلاب صنعتی در دنیا داشتیم محاسینی داشت هم داشت نتیجه رولوسانس بود یک کمه بیدید در اختر انفجار و انقلاب معلوماته الان یک انقلاب و انفجاری دیگه رخ داده انفجار معلومات من و تو اگر که فکر بکنیم این پنج سال خوندیم تمام شد فاره ما تحصیل شدیم امام زمان هستیم کانالله نفره رهیم خدا رحمت نمونه امام شافی رحمت الله علیه میگه کلم از ددت و علمن ازداد علمی به جهلی هرچی علم بیشتر خوندم علمم به نام ناآگاهی و نادانی و جهل خودم بیشتر شد منو تو پنج سال میخونی نگیم بسه فاره با تحصیل شدیم برو از هر بخون آلی بخون بعد برو از هر برو هر دانشگاهی میخوای برو امروزه که انسان میتونه در آن واحد یا در ده سال ده تا دکتران بگیره کافیه که برای هر دکتران یه ای بلویسیم چه بسر تو همین طلاب ما سید قطب ها تکرار نشن ندوی ها تکرار نشن عبد مسلمین ها تکرار نشن جهان اسلام هم دو سه سال پیش آمل می داشت دهتو از علماء بزرگ جهان اسلام با هم تو سال رحمت خدا رفته آملگوز بود واقعا محمد بن راشد میخواست که پاداش خدمات امام ابوالحسن الحسن ندوی اون متفکر بزرگ جهان اسلام یک شکه یک میلیون درهمی در مرکز تجاری دوبی بده در رمضان در اختتامیه مسابقات قرآن و حفظ قرآن وقتی رفت بالا که اون چکو بیگیره گرفت چکو گرفت گفت خدا یا من نمیخوام که مزدم این باشه یک میلیون در هم دویست سی چل میلیون تومن کلمای هستن که با یک موتوسیکلیت ایمانشونو بفرشن شرقه. یک میلون درم گفت اگر که این توفیق پیدا کردیم حاضر من فضل ربی اگر من مبارک بودم برای جامعه انسانی و اسلامی حاضر من فضل ربی این فضل خداست و فضل خدا رو ما با یک میلون درم عوض نمی بعد میدونی چی گفت گفت خدای تو گواه باش این یک میلیون درهم هدیه به مسلمانان فقیره هم. اهدا کرد نیازی نداره راغ خدا آدم رو بی نیاز می کنه خوبی باش متعهد باش با وجدان باش همه که خیر آمد پنی سال حزینه اینجا رو پرداخت کرد تا تعالیم بشی خیر میاد سراغت میگه که من دوش ها دوش توی استادم تو به کار دعوتت بفرده هست چون ما ضعیفیم میگیم که ما اگر رفتیم تو خط دوت چی زن بگیریم چطوری خونه درست بکنیم چطوری فلان بکنیم چطوری. داریم روز بروز ضعیفتر میشه تو سوره جن هست اوزو بالله من الشیطان الرجیم چه میخوام بکنم؟ بخونم حت مزنه دیگه و انهو کان رجال من الانس یعوذون بر رجال من الجن حضادهم قوتم حضادهم رهقه. توکل به خدا اعتماد نفس انسان بالا میبره، خودباوری انسان، امید پیروزی انسان. در خاتمه ارائزم، اینو بدونید که همه رخدادهای بزرگ جهان نتیجی تفکرات انسانه. رخدادهای بزرگ جهان فشرده شده تو فکر انسان گمجانده شده. هر کسی بهتر فکر میکنه بیشتر فکر میکنه مصبتتر فکر میکنه رخدادهای بزرگ میافرینه فکرتون رو فعال بکنید. قدران رخدادهای بزرگ میافرینید من نمیدونم این چیزی به من دادن خبست خیلی حسنه کردید امروز یکی از بهترین روزهای و بهترین و زیباترین خاطره های زندگی من هست در این شهر مبارک اغز در جمع مبارک طلاب عزیز و اساتیل عزیز و مردم خوب و خیرخواه این شهر تونستیم ساعتی ایمانمون افزایش بدیم و از محذر شما امید و برای خودمون تولید بکنیم از حوصله شما حوصله خود را بالا ببریم در میدان دعوت از عاطفه های زیبای شما دل های سگمون سیخ بدیم به همین شما تبریک میگم امیدوارم که خداوند شما را از بندگان رخداد آفرین و تحول آفرین قرار بده قطعا پروانه های پیدا خواهند شد پروانه زیاده تو تاریکی یک شم روشن کن پروانه نمیبین تو تاریکی تا شم روشن میکنی پروانه ها از همه طرف میان و یقین داشته باش که پروانه ها به خاطر تو هم می خودشون می سوزنن عشق پروانه این معروفه خودشون می سوزنه به خاطر شب هستن نباید دامید شد دو تا جمله پایانی می کل سخنرانی ما جمع تو یک جمله و اون این که دنیا به وسعتش میدان به نمایش گذاشتن شکر خداست دنیا با تمام وسطش است که خدا فراهم کرده که من و تو شکر خدا و هنرهای زیبا را به نمایش بگذاریم بیایید در این دنیا شکر رو با هم به نمایش بگذاریم و در خاتمه دوست به دار شاید فردایی نباشد مفید باش شاید فردایی نباشد سبحانه رب بکراب بلعزت همه یسفون و سلامون علال مرسلی و الحمد لله رب العالم السلام علیکم ورحمة الله تعالی و